یکی دیگه از مقدمات که حکما پیرامون معاد روحانی مطرح می کنند وث شرط دریافت لذت های اقلانی هست. خدمت شمار شود که لذت های اقلانی ما گفتیم که طبق دیدگاه حکما نتیجه ادراک اقلانی انسان هست شرط رسیدن به اونم در واقع تکامل ادراکات عقلانی تو دنیا هست که گفتیم تبقیه سخن حکما المعرفت و بذر مشاهده معرفت در واقعی زمین ساز و بذر مشاهده موجودات نوری هستند یعنی شناخت حقایق و موجودات عقلی تو این دنیا خودش مقدمه و عامل حضور در میان اونها و پیوستن به اونها تو سرای دیگر هست حالا پیرامون این که کمترین مرتبه از ادراک، ادراکات اقلانی چی هست جناب ملاصد را یک سخن مشروحی رو دارن در اسفار بین صورت که اینه که اول ما با به شناخت وجود خدا و صفات کمال و دیگر صفات حقیقی خدا برسیم که همه اینها وقتی ما به اینها رسیدیم همه اینها به اصل موجدیت یا آفریدگاری حق تعالی در واقع برمیگردند یعنی آقا من بحث علم فعیلی و ازلی حق تعالی قدرت گسترده اون انایت حق تعالی توی آفرینش جود و رحمت بیکران حق تعالی اینه که صفات خدا این زاید زات اون هست نه زاید بر اون همین اینها رو من وقتی به بحث خالقیت و رازقیت رو ها رسیدم اون موقع تمام این شناخته میرسه به این که بدونیم خداوند خالق ما هست خب ببینید این واقعا حرف حرف درسته ها چقدر ما شناخت نسبت به خالق داریم چقدر نسبت به خدا داریم گزاره خدا هست تا چقدر برای ما قابل فهمه با تمام این لوازمی که گفته با این موارد در واقع یه مرتبه دیگه از ادراکات اقلانینه که انسان به شناخت و معرفت اقول برسه یعنی کلمات تام و فرشتگانی و فرشتگان علمی حق تعالو. مرتبه بعدی دیگه ما به این حد برسیم گام بعدی اینه که ما مرتبه, مرتبه و شناخت نفوز که در واقع کتب الهی و فرشتگان عملی هستن حالا ببینید در مورد فرشتگان علمی عملی من دیدگاه ملی صدران هست دیگه یعنی ما به این مرتبه برسیم مجردات مجردات برای قابل فهم شود مرتبه تجردی کتاب برای قابل فهم بشود مرتبه تعالی کتاب برای قابل فهماشه یعنی ما جدا از این مرتبه تنزیل که قرآن کریم داره باید به مرتبه چی برسیم؟ به لایه های بالاتر از اون برسیم. جایی که اجمال این تفصیل هست، جایی که در واقع مقام در واقع مکنون اون ببینه میتونیم برسیم حداقل دقیقا به مرزهای اون برسیم. چهارمی مرتبه در واقع کیفیت و چگونگی صدور هستی از مبدأ آفرینش؟ و ارتباطات موجودات با مبدأ آفرینش هست که اینم در دو قوصه سعودی و نزولی حاصل میشه هنین شما وقتی نگاه میکنید یک جوره ما متوجه شدیم ارتباط موجودات با حق تالا این در واقع به چه شکلی هست خب ما از اون ور خداوند که سمد و بینیاز هست که خداوند می آفریند آفریند آفرینم این فیضه اوست خدا نیاز ندارد که از این بر ما نیازمند خداییم این قوصه سعودی و نزولی را ما به این شناخته برسیم و ملا صدران میگه هرگاه انسان در دنیا به این درجه از معرفت نائل شد به رستگاری بزرگ دستیافته به بهره فرابانی سعادت نصیبش خواهد شد البته ایشون میگه که این درجه از معرفت اولین مرتبه برای رسیدن به سعادت اقلانیه حالا هرچه این مقدار از نظر کمی و کیفید افسوده بشه ساده تقلانی در واقع چی میشه کاملتر خواهد شد پس این مواردی که مطرح شده و واقعا خیلی مقام این دانشی که شاید کسب میکنیم این ایچ معرفتی برای ما نیاورده طبق این طبیعی که است ای بس ما فکر کنیم فرهیخته ایم فکر کنیم میدانیم اما نه وجود حق تعالی و آفریدگاری حق تعالی را می‌دانیم نه معرفت به عقول داریم نه معرفت به نفوس داریم و نه در واقع کیفیت و چگونگی صدور هستی از مبدأ آفرینش و ارتباطات موجودات به اون را در واقع می‌دانیم در واقع ما هیچ فهمی و هیچ درکی اون موقع نخواهیم داشت و لذت‌های عقلانی را ما نمی‌تونیم درک کنیم پنجمین این بحثی که ایشون مطرح میکنه بخ بخ بحث نقش ادراکات عملی توی سعادتهای اقلانی هست ما باید توجه کنیم که واقعیت نفوس انسانی دوتا جمعه داره یه جمعه حقایق برتر از اونها هست که در واقع بهشون برتر همون عالم ربوبی و عالم اقول هست عالم فرشتگان هست و یه جمعه دیگه با حقایق پایین تر هست با بدن و قوای بدنی طبیعتا ببینید ما در دنیا گفتیم که نفوسمون در واقع تعلقشون به بدن حالت تدبیریه این بدن رو در واقع تدبیر میکنن خب حالا ما باید این نفسمون رو آیا فقط صرف بدنمون کنیم یا به اون حقایق برترم در واقع مصروف کنیم طبیعتا هدف اینه که ما به تکامل برسیم دیگه خلیفت الله باشیم دیگه حقایق برتر باید به با اونستم اینا رو متصل کنیم این نفس رو اینجاست که ادراکات به دو شکل میشه ادراکات نظری و علمی ادراکات عملی خوکم ما میگن اون چیزی که در تحقق سعادت اقلانی نقش دارن ادراکات علمی و نظری هستا ببینید مثلا شما یه شخص عامی رو در نظر بگیرید این آدم آدمه متشرعی با هست شاید ماه شعبان و ماه رجب و ماه رمضان اینا همه رو روزه بگیره به تمام در واقع دستورات و تکالیف پایبند باشه خدمت شما عرض شود از نظر حکما این آدمه اد... به مرتبه اد... ادراک علمی و نظری نرسیده ادراک عملی رو داره ها کارهای شایستان انجام میده از گناهان اجتناب میکنه اما آنها میگن تو ادراک علمی این دخیل نیست خدمت شما هرچه آدم زاهد و پارسا ما تو معرفت علمی داریم ما آدم داریم که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی تو مرتبه بالایی هستن از نظر اونها اینه که ادراکات عملی نقششون در واقع بازداشتن نفس از آلودگی و فرو رفتن در شهوات و زشتی ها هست اون نقش اصلی رو خدمت شما هر شود که ادراکات نظری و علمی پیاده میکنه. کنه بهش توجه کنید بحث دیگه که مطرح می شود مراتب لذت های اقلانیه طبق دیدگاه و افرادی که از لذت های اقلانی برخوردان میشن همه در یک مرتبه نیستن شما وقتی میبینید جناب آقای حکیم سبزواری سخنی در الحکم دارند که انسانها را به هفت گروه دسته بند نمی کند که اینم در واقع برساس مراتب علمی و عملی اونها هست اشون میگه انسانها از این منظر از منظر مراتب علمی و عملی هفت دست هستن که به نظر من دسته بندی جالبیه یکی کاملان در علم و عمل که دیدگاه ایشون اینه که کاملان در علم و عمل از لذتهای اقلانی برخوردار میشند. هر هرچند مراتب متفاوتی دارند اینها کاملان در علم و عمل در واقع پس از مرگ بدون درنگ به عالم عقول در واقع ارتقا پیدا می کنند چطوری فرشتگان اون عالمی که فرشتگان به اون مقام رسیدن به مقام تسبیح رسیدن به مقام تجرد رسیدن اینا میشکلی این شکلی میشوند دوم کاملان در علم و متوسطان در عمل افرادی هستند که شناخت ببینید منظورمون علم و این علم آکادمیک دانشگاهی نگیریما همون جنبه‌ای بود که ملا را گفته بود یعنی اینا واقعا خدا رو میشناسن اما خب حالا تو عملشون آنچنان که باید شاید تو 100 صد درصدی نبوده مثلا شاید مثلا مثل بعض از اشخاص دیگه نبودند یا کاملان در علم و ناقصان در عملی در مراتب شناخت معرفت بالا هستند اما در عمل اینها در واقع ناقص هستند از نظر حکیم سبزواری گروه دوم و سوم بعد از توقف تو عالم مثال و طی مراهلی به عالم عقول می پیوندند خب حالا ایشون دسته های بعدی را که مطرح میکنن حالا ببینید کاملان در عمل و متوسطان در علم ببینید اینا دیگه میگه به عالم اغول در واقع ارتقاب پیدا نمیکنن کاملان در عمل و ناقصان در علم متوسطان در هر دو که طبیعتاً دیگه اینا تکلیف مشخصه ناقصان در هر دو زمینه هم که دیگه اینها فبحل مراد اینا دیگه هیچ تناسب و تنا... در واقع خدمت شما و سنخیتی با عالم عقول نخواهند داشت این مقدمه ایشونم مقدمه جالبی بود بحث دیگه که حکمای ما به اون پرداختن و ملا صدران مفصل پیرامون... پیرامون اون بحث میکنه بحث شقاوتهای اقلانی هست از نظر جناب ملا صدرا شغاوت های اخروی معلول یکی از دو آمل زیر هست یکی گناهان و معاصی که در واقع از بدن و قوای اون صادر میشه که متاسفانه خیلی همون مرتکبه اون میشیم در واقع با زبانمون غیبت میکنیم و هم باردی که حال رخ میده خدای نکرده با دستمون سرقت میکنیم و دیگه گناهانی که با چشم امونم نگاه ناپاک و بقیه دومی ملکات پلید نفسانی مثل حسادت و ریا و اناد و حق و انکار حقائق علمی ببینید از نظر ملا صدرا این بحث گناهانی که ما با بدن و قوای بدنی در واقع اونها را انجام میدیم اینها در زمره شقاوتهای جسمانی هستن که در واقع در تقابل با سعادت‌های جسمانی و حسی قرار می گیرن. نوع دومش که بس ملکات پلید نفسانی هست که اینا خیلی دیگه خطرناک میشه برای انسان اینها شقاوتهای غیر جسمانی هستند که در واقع نقطه مقابل سعادت‌های روحی و می میباشند. خب این افراد از نظر ملا صدرا شقاوت های اقلانی در واقع به افرادی ارتباط داره که در حیات دنیاوی با توجه به استعداد و اشتیاق فطری که انسان در واقع فی نفسه به معرفت های اقلانی داره اونها در کسب این استعداد در واقع سستی و قفلت کردند و در رسیدن و ارتقاب مراتب عقول در واقع محروم شدند و کم کم اینها توی صورت, با صورت در واقع صور علمی و اینها مخالفت کردند اینقدر این در واقع در اعتقادات و باورهای نادرست خودشون تعصب اینا ورزیدند که در واقع به شقاوت و عذاب اخروی گرفتار شدند و ایشون میگه شقاوت های عقلانی در واقع ابدی و زوال ناپذیر هست در حالی که شقاوت ها و عذاب های جسمانی ممکنه بعد از این مدت چی بشه قطع بشه پس با این نکته آقا افرادی که حال گناه میکنن با این بدن این بدنی که خدا به اونها داده اینها ها از های جسمانی اخروی محروم میشن به این معنی نیست که اینها حتما اونجا از سعادت های روح، روحانی در واقع بهره میشه. میگه آقا اینها در واقع مرتبه خیلی نازله رو برخورد خواهند شد نهایت تمرینه دیگه افرادی که های غیر جسمانی داشته هیچ درکی در واقع این قوه مدرکه اونها دیگه کلا تعطیل میشه اینها نمیتونن کمالات رو درک کنن این خودش بزرگترین چه عذاب هست اینم سخنانی بود که حکما در واقع پیرامون معاد روحانی و لذت و درد اقلانی مطرح کردند خب مطالبمون رو تا این بخش به اتمام میرسونیم و میریم سراغ بخش بعدی که بخشی است که ما مفصل می‌بینیم آیت الله سبحانی به اون اشاره کردن بحث تناسخ و معاد خدمت شما عرض شود که ما همتون دیگه تناسخ در اصطلاح اصولی و علوم رو را دیگه آشنا هستید دیگه ببینید ما اون تناسخ در لغت اگر بخوایم بگیریم حالا جدا از این که یه به معنای تحول و انتقال هست یه به معنای تعاقب و در واقع در پی هم دو تا پدیده که یکی جانشین دیگه میشه مثلا شما در نسخی که ما میگیم برداشتن حکم شرعی ثابت به وسیله حکم شرعی دیگر حالا یه شروط دیگ هم حالا مطرح شده که آیت الله در البیان اونجا مفصل سخن میکنه. یعنی شما ببینید یه حکم جانشینه حکم دیگه بشه پس اینجا بحث جانشینی مطرح میشه دیگه تعاقب دو پدیده که یکی جانشین دیگری میشه نوع دیگه که در واقع اینجا منظور ما هست تو لغت بحث تناسخ این من معنی لغوی اون تحول انتقال هستا اینه که روحی از بدنی به بدن دیگه منتقل, منتقل بشه اینجا دیگه بحث تحوله بحث انتقال بحث پی, پی بودن در واقع نیست خدمت شما عرض شد که انواع تحول و انتقال ها رایشون را سه دسته دونسته یکی انتقال نفس انسانی از این جهان به سرای دیگر دومی انتقال نفس در سایه حرکت جوهری از مرتبه قوه به مرتبه کمال که الان مثلا مثل نوزادی که نفس نوزاد دیگه نوزاد همینجور کمالات را طی میکنه طی میکنه تا در واقع به مرحله کمال مثلا توی سنین بالاتر به مرحله به تدریج به کمال میرسه. یا انتقال نفس بعد از مرگ به جسمی از اجسام. مثلا مثل سلول نباتی، نطفه حیوان، جنین انسان. مثلا مثل, مثل اینکه انسان وقتی که میمیره روحش به جای روحش در واقع به جای که به سرای اخروی یه بار دیگه به دنیا برگرده. این چیزی است که هندوها و اینها میگن. حالا یعنی ما به اینها میپردازیم. خدمت شما هرچوت این نوع تناسخ یعنی تناسخ ثومی که خیلی خطرناک است یعنی انتقال نفس پس از مرگ به جسمی از اجسام که اینم تو نشئه باز دنیاوی صورت میگیره شما مشاهده میکنید که توی فلسفه اسلامی و قبلا تو فلسفه یونان و توی در واقع مرزهای فکری بشر مطرح بوده ببینید یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه از نظر ایشون اصل تناسخ چی شده یده به تناسخ روی وردن. اصل تناسخ در واقع جبران کننده مزایای معات هست و بازگشت انسان به این دنیا و تعلق نفس به بدن مادی گایی برای دریافت پا داشت و یا برای کیفربینیه ببینید مثلا این میخوان تناسخ را بگن دیگه. مثلا خدمت شما هر چود اینجوری میان توجیه میکنن مثلا میگن این آدمی که الان آدم سعادتمندی و چمنم آدم سروتمندی از آدم خوشبختیه این قبلا در واقع خدمت شما هر تو زندگی دیرینه خودش چی بوده سعادتمند بوده یه بار دیگه برگشته به این حیات دنیاوی و از حیات در واقع دور از قصده ها و در واقع در رفاه به سر میبره در مقابل اون افرادی که خدمت شما هر که تو مراحل تو زندگیشون خیلی بدبخت و بیچاره هستن توی نشعه پیشین در واقع تو حیات پیشین دنیاویشون در واقع آدم های چی بودن آدم های ظالم و در واقع تجابسکار و ستمکاری بودن به همه خاطر در واقع این شکلی هستن ببینید به همین خاطر متاسفانه بحث تناسخ به معنای اشتباهی که ما مشاهده می‌کنیم در واقع یه ابزاری در دست مت... متکبران و استعمارگران بوده دیگه اینها بخواستن عزت و در واقع رفاه و ثروت خودشون رو حاکمیت خودشون رو معلول در واقع چی بدونن پارسایی و تقوای دوران پیشین بدونن یعنی اینکه آقا ما در گذشته در واقع آدم های خوبی بودیم حالا آدم های نگونبخت و بیچاره و فقیر و اینها میگن این فقر و فلاکت شما در واقع نتیجه زشتکاری ها و فحشاهای شما تو زندگی های پیشین دنیاوی بوده. خب ببینید اینها متاسفانه این موارد رو شما مشاهده می‌کنید. این انگیزه ها مرجب می‌شده که توی کشورهایی مثل هند که در واقع فاصله, فاصله های طبقاتی فراوان بوده، یه جورایی در واقع یه سرپوش بذارن روی این فاصله های طبقاتی، افراد مرفه و اونهایی که حاکم بودن. این گونه آدمهای و بیچاره رو در واقع فریب میدادن اونها میگفتن آره دیگه این سرنوشت ما هستی اگر بیچارهیم قبلا ما آدم های بودیم دیگه آدم های بدی بودیم آدمای های نگونبختی بودیم پس این دیگه سرنوشت ما هست از اون بر آدمایی که سروتمند هستن و این ها میگن چی؟ میگن که خدمت شما هر شود که ما قبلا آدمای سعادتمند و با تقوی و پارسایی بودیم ایشون یه خلاصه ای را مطرح میکنه تو صفحه 192 دوم که ما سن و تناسخ در واقع وقتی دیریم ریدگاه قالم تناسخ را میبینیم سه و تناسخ را میتونیم لحاظ کنیم یکی تناسخ نامحدود هست دومی تناسخ محدود به صورت نزولی و سومی تناسخ محدود به صورت صعودی. که حالا به تفصیل به اونها میپردازن فقط ایشون من خلاصه بگم که تناسخ نامحدود رو از نظر فلسفی باطل و در تضاد با معاد میدونن تناسخ محدود به صورت نزولی رو یه جورایی میگن که مخالفت همه جانبه با جنبه های معاد نداره تناسخ محدود به صورت سعودی هم در واقع یه نظریه غیر صحیحی هست یک نظریه فلسفی غیر صحیح هست که مخالف مخالفت و معاد Nem írva,